زندگی عیم عليه موصولام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب میاد یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن کل لهم واحد عیم عليه موصولام آیا یک زندگی آیا. سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی اعیمه علیه مسلم فقط این بود که یه عدد شاگرد یه عدد مورید، یه عدد علاقمند رو دور خودشون جمع کنند احکام نماز و احکام زکات و احکام حج و اخلاقیات اسلامی و معارف و اصول دین و و این چیزها رو به اونها بیان کنند و همینو بست یا نه غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح اونچه که گفته شد یک چهارچوب دیگری در زندگی ائمه است که او همون زندگی سیاسی اعمه علیه مسلمه اینی که میگم امه یعنی همه ائمه از امیر تا امام اسکری علیه السلام وقتی که احساس کردند که اسلام رو به غربت افتاد و جامعه اسلامی تشکیل نشد چند هدف رو اهداف اصولی خود قرار دادن یکی از هدف های امه که خیلی هم مهم بود تبیین درست اسلام و تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریف ها و تعریف کننده ها بود خود همین کار یک ماهیت سیاسی داره حدیث وجود داشت حکم اسلامی بیان نیشد اون بیان نمیشد تفسیر و تبین درست اسلام در همه شعون و امور جامعه اسلامی بود که عیمه علیه مسلم بخواستن جلوب این رو بگیرن این یک کار که از کارهای مهم عیمه علیه مسلم هر مهم دیگر حبین مساله امامت بود امامت یعنی زمامداری جامعه ای اسلام لذا اعماال متسلم لازم میدونستند دو چیز رو به مردم بگن یکی این که بگن امام دارای این شراایط حاکم اسلامی دارای این خصوصیات این اسمت این تقوا این علم این معنویت این رفتار با مردم این عمل در مقابل خدا خصوصیات امام یعنی حاکم اسلامی رو برای مردم بیان کن این یک و دوم مشخص کنن که اون کسی که دارای این خصوصیات هست امروز کیه که معرفی میکردن به خودشون رو بیان میکردن این هم یک کار بزرگ اعمه و میبینید که این یکی از مهمترین کارهای سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی علاوه بر همه اینها امه عليه مستلام حد اقل از دوران امام حسن مجتبی به یک حرکت زیر زمینی همه جانبه سیاسی و انقلابی رو به قصد قبض کردن حکومت شروع کرده بود اینی که ائمه علیهم مسلم یک حرکت سیاسی تشکیلاتی وسیع و گسترده رو انجام میدادند با اینکه این همه شواهد وجود داره این ناگفته مونده و ذکر نشده و این مشکل عمده. فهم زندگی ائمه علیهم السلام به مجرد این که بار امانت امامت رو تحویل گرفتند یکی از کارهایی که شروع می کردن یک مبارزه سیاسی بود یک تلاش سیاسی بود برای گرفتن حکومت بنده بارها گفتم زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال پول کشیده زندگی یک انسان به حساب بید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستند. کل هم نور واحد، تمام کارهای ائمه در طول این 250 سال کار یک انسان با یک هدف، با یک میت و با تاکتیک های مختلفه.